بسم الله الرحمن الرحیم درس مروزی ما شما در دعوت به اسلام است کالنگ تو اسلام اگر تاریخ انسانیت مطالعه کنیم، میبینیم که خداوند مطال جل جلاله هم تقریبا یک لگ و بیست چار از آر با ها فرستاده این یک لگ و را که خداوند متعال فرستاده بود اینا که از زمان نوح علیه شروع میشه با زمان حضرت محمد صلی الله علیه سلم. این پیغمبره اول چه قسم شخصیت بودند؟ شخصیت بودند که خداوند متعال هر پیغمبره در بین ملیون ها انسان یک شخص پاک معصوم و مخلص را اختیار کرده اوکی که احکام خداونده بر مردم برساند. توحید خداپرستی را یک تا را بر مردم برسانه وزیفی از چی بود؟ وزیفی دعوت بود به دین مقدس اسلام تمامی پیغمبرهای که از زمان آدم علیه یا زمان نوح علیه تا محمد صلی الله علیه وسلم آمدن تمامی این پیغمبرها به چی مردم دعوت میکردن؟ به دین مقدس اسلام یعنی واختی که شما در قرآن عزیز گوشان میخوانیم که ان الدين عند الله الاسلام دین بنازد خداوند متعال اسلام است یعنی خداوند متعال دین دیگری را نفرستاده آیه شریفه است که از درباره حضرت ابراهیم علیه السلام که حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام یهودی و نصرانی نبود بلکه مسلمان بود حضرت ابراهیم علیه السلام یهودی و مسیحی نبود ما ا uh, و هر پیغمبر که خداوند مطال در ماریزو بر ما بیان کرده میگه که اینا کلشون مسلمان بودن چرا که عقیدی که از خداوند مطال مه هیچگاه عقیده بودپرستی عقیده سی خدایی عقیده تعدد عقیده حیوان پرستی نیست چون خداوند مطال انسان مثل که ما شما خاندید در سای خدا شناسی انسان خداوند با عزت خلق کرده و خداوند دین را برای انسانیت میفرسته اتحاد مردم شود نه سبب اتفاق و بیتفاقی و بدبختی این پیغمبر برای که آمده بودن اگر ما شما قرآن از مشان صفحه بزنیم و یا تاریخ انسانیت صفحه بزنیم ببینیم که در سابق وقتی که از روی موسو علیه السلام مثلا از قریه خود خارج میشه میره قری قریه دیگه ببینه که اون یک پیغمبر دیگه حضرت شایب علیه سلام است و خود موسیٰ علیه سلام که در مجایی که پیغمبر است میبینه که در پالوی حضرت موسیٰ علیه سلام حضرت هارون علیه سلام هم است که او هم پیغمبر است بناهن در قرآن عزیب و شام خداوند مطالعه که و ما کن نمعثبین حتی نب رسولا ما هیچ قومی را عذاب نمی‌کنیم تا وقتی که براز اونا رسول یا رهنما یا پیغمبر نفرستیم که اونا را به حقائق دعوت بکنه باز اگر دروست را رعب وزنا آزاد میکنیم از این خاطر اگر در قدیم چین وجود داشته یا ژاپن وجود داشته یا هر کشور دیگری بوده حتما خداوند مطال برای از و پیغمبران فرستاده و آیه شریفه دیگمه که رسلنا بعضی از پیغمبرایی هست که ما قصه از اونا رو به شما بیان کردیم و رسولان و پیغمبرهای دیگی هست که ما قصه اش بر شما بیان نکردیم یعنی پیغمبرای زیادی خداوند متعال برای هدایت انسان ها خب این سلسله پیامبران در با آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلام ختم شد دیگه پیغمبری نامت خب وظیفه پیغمبرو که ما گفتیم که وظیفه پیغمبرا وظیفشون چی بود دعوت بود بچی دعوت بود به اسلام دعوت بود به توحید و دعوت بود به پرستی خب این سوال پیدا میشه که خب وقتی که با آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سلسله ختم شد ادامه وقتی ایستن سلخ ختم شد، پس ای وزیفی پیغمبر را کی انجام می‌دهد؟ ای وزیفی پیغمبر را کی انجام می‌دهد؟ حضرت پیغمبر صلی الله و علیه و سلم می‌گن: قل هزه سبیل، قل هزه سبیل، ادعوا إلى الله، ادعوا إلى الله، ادعو آن و من اطراء یعنی پیغم برسال الله علیه وسلم نیا که اینمی راه است دعوت به یک دعوت به انسانیت دعوت به اخلاق این راه ماست ما من ما دعوت میکنم به اینمی را مردم را یعنی دعوت میکنم به سوی خداون انا من و من تبعانی و هر کسی که پیردی از من از این خاطر روزی که حضرت ابوبکر صدیق مسلمان میشه و میفامه که وظیفه یک مسلمان دعوت برای خداوند است وقتی که خود انسان مسلمان شد وزیفی عزیز که باید دیگران را هم برای خداوند دعوت بکنند عزت و بکر صدیق وقتی که اثر شد چند نفر دیگر آورد، وقت شش نفر دیگر و آمد بر پیغمبر صدیق سام گفت که ای رسول خدا اینا من این تعداد دیگه هم رهنمایی کردم اونا هم مسلمان شدن را بدین مقدس اسلام مشرف شدن این را هم من روی خود آوردیم هر کسی که مسلمان شد، مثلا آشوکورن که قصهش ما شما, شما خواهدیم اون وقتی که مسلمان شد فامید حقیقت دینه که اساس دین به چی شده، داشته شدن اساس دین مقدس اسلام به است. چی چه معنا؟ خیرخوی مانا که مسلمان حق نداره که جنته بر خود بطلبه و باید برتمه باید در جنت برم اگر کسی به این نیت باشه که من در جنت برم و دیگرا براششان خدا کنه در برن خداوند مطال ایره به جنت نمیبره به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان مسلمان باید خیرخواه باشه باید خیرخواه بر خود باشه خیرخواه بر فامیل خود باشه خیرخواه بر همسایه ها و اقارب خود باشه خیرخواه بر تمام عالم و اس... تمام دنیا باشن خیرخواه برای مسلمان و غیر مسلمان برای کنشان خیرخواه باشن یعنی یک مسلمان قصد نداره خوش نداره که یک کسی در دنیا با ایمان،, ایمان بماره یک کس پیش یک دعوتکر اسلامی آمد پیش یک مسلمان یک عالم دیم یک کس آمد و اینه ما روشان که استالین مردار شدی. می گفت ای انسان احمق تو خود بانوی شیطان یک جای ساختی امروز شیطان خوشحال شد که سالین بی ایمان از دنیا رفت ولی ایت مسلمان خوشحال نمیشه که یک نفر از دنیا بی ایمان برد چون اساس اسلام کست به خیرخواهی است و اساس اسلام کس به دعوت دیگران به سوی حق است خیرخواهی چی قسم؟ مثلا شما ببینید در, در دیگر زبان ها امی گریتنگ یا سلامالیکم جبستانی که میکنن این تو کدا مفهوم دقیق رو خوب نداره وقتی که در اسلام نهیم مسلمان ها وقتی که یک مسلمان ها در, در مقابل خود میبینه در آور برش میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تکمیل یا کاملشی نمیست السلام علیکم چیمانو السلام علیکم؟ این سلام امی کلمه السلام علیکم, ایسلام علیکم ایسلام در حقیقت یک اعلان است که بر جانب مقابل خود اعلان میکنه چی اعلان میکنه؟ اول برشمه که برادر وقتی که من تو سلام دادم خدا تو را سلامت داشته باشه تو دعا میکنن مثلا اگر شما در آن میرین و چین نفر بر شما سلام میتر و شما و رزیما و علیکم السلام بگین شما هم در مقابل جواب از اینا رو که سلامتی و رحمت و خداوند برای شما باشد، اینال فکر پیشنید که اگر از چل نفر دو یک شما در قسمت شما قبول شدن شما رو خداوند جنتی میسازن یعنی وقتی که انسان با کسی سلام میتن در حقیقت برازو چی میکنن دعای خیر میکنن دون چیزی که سلام بر انسان بر جان مقابل میگه که تو از شر ما سلامت هستی چون سلام کلمه یه است کلمه صلح است بر جان مقابل خود صلح اعلام میکنه که ما ammo تو کدام دشمنی ندارم اگر دشمنی ندارم و تو سلام نمیذارم آن که وقتی میگیم السلام علیکم یعنی مانایشیه که تو از شر ما در امان هستی من با تو هیچ ضرری نمیرسام سئولی فلسفه سلام علیکم چی وقتی که انسان سلام میتا مانایشیه که از سلام یکی از نامهای خداوند متعال است که در قرآن عزیزم و شام آمدن اینال وقتی که این نام خداوند متعال است بر جان مقابل خود میخواه خدمت بکنه و براسو خداوند خداوند در یادش بتکه فکرت باشه که در هر جایی که استی خداوند متعال جل, جل رو به امرائی تو هست اینال وقتی ما شما این موضوعات در کردیم و فاهمیده که دعوت وظیفی پیعه مرسی الله عليه علیه و وظیفی تمامی پیغمبر ها و امت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم ببین ما شما در قرآن از مشان میخبرن که بعد ما شما خطاب شده که کنتم کنتم خیر امتن شما بهترین امت هستین تأمرونا بالمعروف بالمعروف و تنحونا عن المنکر و تؤمنونا بالله شما بی که دایی آیت شریف خطاب از درماؤ شما که میگه کنتم خیر امه شما بهترین امت ها هستیم چرا ما بهترین امت ها هستیم به خاطر که رنگ ما سفید است نه خیر در امت پیغمبر صلی الله علیه و سلام مردمای سیاپوست هم هستند آیا ما به خاطر اینکه بهترین مردم هستیم که از افغانستان هستیم افغانستان هستیم نه خیر بلکه بسیار مردم مردمای از کشورهای دیگه هم هستند که اونا مسلمان هستند کل از اینا امت پیغمبر صلی الله علیه و سلام هستند پس ما چرا بهترین امتا هستیم که می گفتم خیر امتی اخرجت للناس که شما برای مردم و خدمت مردم خارج شدین یعنی شما ظهور کردین خاطر چی؟ خاطر که وظیفه پیغمبرها را بردوش دارین مردم چی میکنین؟ به بالمعروف مردم را با به کارار نیک دعوت میکنین و تنهاونه انلمون کرد و از کارهای بد مردم را میکنین و به بالله و خودتان هم ایمان با خداوند متعال جل جل لقو از این خاطر اگر این شراید در وجود یک انسان نباشه یک انسان این شراید در وجود از او نباشه که ای کارهای خیره بکنن اون خیر امت گفته نمیشه بهترین امت گفته نمیشه ببین در آیت در والعصر در والعصر ما شما میخونیم که خداوند متعال جل جل لقو والعصر قسم است به وقت این من انسان الافی خداوند میگه والعصر قسم است به وقت یک پیان قرآنی برای انسان است که خداوند متعال چرا به وقت قسم میخورن میگه خداوند متعال قسم میخورد به وقت تا که بر شما درس بده که وقت یک چیزی بسیار مهم است بسیاری کسا میگیم که در کشورهای خارجی میگن که وقت مثل طلاع است. بلکه ما مسلمان ها که نه وقت مثل تلاه نیست به خاطر ازی که اگر شما سال گذشته طلای داشتین و تلاهی گم شد یا او را دوست بود امسال دوباره کار بکنید دوباره تلاهی تانه به دست اما مقداری که از دست داریم دوباره میتونیم به ما اندازه تلا بخرین اما وقتی که پار گذشته یا دیوز وقتی تان سفری شد اونو دوباره بعد سعوده نمیتونیم از این خاطر وقت در اسلام حتی به طلا و به هیچیز به علماس وضع نمیشه خدا وان قسم به وقت که تا ما رو متوجه به اهمیت وقت بسازه بازمیه که انسان و خسر. باید متوجه باشه که انسان در زیان و نقصان است. چرا در زیان و نقصان است؟ هر قدمی که انسان میماند، هر قدمی که انسان میره به کدام طرف میره؟ انسان وقتی که در حرکت است به طرف جوانی نمیره بلکه به طرف زنیفی و پیری و بالاخره نهایتش به بخ... به ختم دنیا است. مثلا اگر یک نفر در میلیون قدم داشته باشن هر روزی که شما قدم میزنید، می قدمهاتون تعدادش چی میشن؟ کم شده میره. بالاخره میگه انسان به طرف نقصان در حرکت است. چون نهایتش مرگ است بلآخر به طرف مرگ در حرکت است اما میگه الا الذین منو مگر استثناس از یک کسایی که در نقصان هستند کی استثناس الا الذین آمنو مگر کسانی که ایمان آوردن اول ایمان آوردن درش میکنند و عملو الصالحات انا اعمال نویک میکنند سه چی میگن؟ اولش آمنم شد دومش اعمال صالحه شد سومش اونش و تواسو بالحق و بالصبر مردمان را چی میکنن؟ دلالت میکنن نصیحت میکنن رهنمایی میکنن به حق و راهنمایی میکنن مردم به صبر به کراهینه اساس اسلام که سبب خلاصی انسان میشه چیست؟ سه نقطه است ایمان اعمال صالحه و دعوت دیگران به حق و راهی درست اگر انسان اینمی یک صوره اساس تمام دینه برای انسان بیان میکنه که اگر کس نیخواه نجات پیدا بکنه اینمی سه شرط باید در وجود خود داشته باشه که یکی از شرط هاید. انسان صالح کسی که خودش خوب بادن باشه و کس دیگی نصیحت مسیح بخیر نکنه اون انسانی درست نیست نگم در زمان بنی اسرائیل مگر وقتی که خداوند دین حق بر مردم بیان داشت اینجا سه طبقه مردم شدند یک طبقه از اینها گناهکار بودند طبقه دوم از اینها خودشان نیکوکار بودند نیکوکار بودند ولی ولی گناه کردند نا نا نسیت نمی کردن خلاص من خود گناه نمی دیگه اینا می کارشون. و کارشان و تایفی کسایی بودن که خودشون میکو کار بودن و به, به نیکی مردم ها بروت میکردن اونان میگه وقتی که عذاب خداوند نازل شد عذاب خداوند که میگه نازل شد تقریبا اگر چل هزار گناه کار بود چل هزار گناه کار از بنده خلاق شدن م شانتزار من مردم های میکوکاری که مردم و خیر دعوت کردنن اینها هم حلاق شدن و خاطرشی و که اینها حقیت تنها کدام مردم ها نجات پیدا کردن اون مردمه که دو سفر باشن سفر اولشون میکوکاری بود و صفت دور دعوت به یکی د دیگرار هم بر شما که شما کارای بد نکنین چراکه اگریه کسی دعوت به نمیکنه، نمیکنن که این نفر خیر خو می ندارم و انسانی که به دیگر خیر خانه باشه از این خاطر ایر خداوند در روز قیامت اجر درست نمیده اگر یک نفر در اعضای فامیل انسان مثلا مرا فامیل خود هستم میبینم که برادر خوردم یا خواهر خوردم یا طفل خوردم شما میبینید اگر در خانه یک بشکک چوچه انسان داشته باشه ما میدونیم که این اینی بشکک چوچا دقیقو رفتار کنه ما شما میبینیم با هر شکلی که باشه کوشش میکنم که از ای آتش نجات بدید خب وقتی که در فامیل خود می‌بینیم که یک کس یک طفل یا یک جوانی حقیقت درک نکرده نفهمیده و ما شما می‌فهمیم که کارهایی که این چی میشن نتیجش که بالاخره ای و با دوزخ برن از این خاطر حق این طفل بالای ما حق داره که ما به او نصیحت بکنیم این دوست ما بالای ما حق داره که ما شما باید به رسول گفت حقه برسانیم و هر کو حقه حقا برسانیم ببینن ما یک مثال آوردیم امروز این مثال از چیستم؟ این مثال یک دارشمند آمریکایی است که نامش جوزف ادوارد است. جوزف ادوارد کسی زندگی خودا چی قسم بیان ای این میگه که ما خودم نامش قبل از اسلام جوزف ادوارد بلا و نامش بود از اسلام نام خوده شیخ یوسف استس مانده یعنی نام خوده تغییر داده به نام اسلامی نام پیغمبر یوسف علیه السلام ها با بالای خود مانده این میگه که من خودش جبیه کسا شما بخورین میگه که من سرسخترین دشمن اسلام بودم سرسخترین دشمن اسلام بودم این ایج اسلام خوش نداشتم و همیشه فکر میکرم که مسلمان ها تروریست هستن مسلمان ها دلیل ندارن. مسلمان ها عقل و منطق ندارن. بالاخره میگه تجارت میکردم و در وقتی که تجارت میکردم پدرم هم تجارت میکرد نکالا چی باشه که این کسره که تو دعوت میکنی این مسل... اه... کسی که کسرهیش ملاقات میکنی این مسلمان است میگه خب من پدرم گفتم من نمیخوام که یک مسلمان ملاقات کنم و من کسی هستم که ببینید تحصیلاتش چه چیست میگه شاگردی مستری در هنرها داشتم و شاتنمی دکترا در علم لاهوت لاهوت چی را میگن کسایی که دکترا میگن پیشدی میگیرن در علم الهیات یعنی در دین مسیحیت اونها یک پانتونی دارن که در اونجا در مسیحیت تخصص حاصل میکنن. امرای مسلمان ملاقات بکنم لیکن پدرم برای من گفت که شما باید امرای ازی مسلمان حتما ملاقات بکنید خب میگم من ملاقات رفتم به امرای ازی نفر وقتی که دیدم اول در ذهن یک انسان یک انسان بسیار وحشی جروع کرد ولی پسان وقتی که به امرای ملاقات کردم دیدم که یک مسلمان بسیار انسان نورمال است امرای چند روز تیر کردم بالاخره میگه که با آموزیه‌ی کمی دوستی پیدا کردم خداوند متارجی علجالهو اگر خواسته باشه کس را هدایت بکنه میگه من دیدم که نفر از چی قسم میتونم مسیحی بسازیم یا بدیل مسیحیت دعوت بکنیم این میگم جایی نداشت میخواست که پدر درک مزید زندگی کنن من پدر ما گفتم که اگر امکان باشه اینو در خانه خود ببریم خوب است یفیل ما بردم در خانه خود سه مو در خانه ما همراه این زندگی میکرد در می طول سه موی که همراه ما زندگی میکرد در خانه ما گفت ما این مسائل مسیحیت یا مسائل اسلام مناقشه میکردیم یک کاردگی میگه ما می در تکساس ایالات متحده امریکا تکسوس اصلا گفت ما در تکساس دسیون دعواتری داریم که به ما مردما به مسیحیت دعوت میکنن کسایی هستن که مردما به مسیحیت دعوت میکنن میگم ما رفتم یک نفر کشیشی داد نفر دا کلیساش نکنه یک کشیشا خواستم گفتم بگی که هم و خودتون بگی اینجوری یک نفر مسلمان است اگر اردوی ما کوشش بکنیم این محمد عبدالرحمن رو شما مسیحی بسازیم خوب میگم ما ارضو وقتی که ما خانمم و این می کشیش سی نفر یک طرف ایستادیم و کتابای انجیل آوردیم انجیل چند انجیل است یک انجیل نیست چند انجیل است درست خانه یک قسم انجیل است درست این کشیش یک قسم انجیل است و رسم ما انجیل دیگه است بلاخره ما بسیار زحمت توانستیم که از این ها یک اختیار بکنیم و با این مسلمان گفتگو بکنیم و با برایزی بحث را بحث بکنیم گفتیم مسلمان بسیار آرام ششته بود و وجه پوی ما مکمل می‌ش می و برای گفت که بالاخره ما همه تصمیم گرفتیم که کار میکنیم که کل ما خودم میگیم هر کس که دلیلش قیب بود ما و شما به اونمون دین میریم گفت اولین سوابی که کشیش ازی پرسان کرد یا ما پرسان کردم نکم چیه میگه پرسان کردیم که در طول 14 ست سال, سال چند قرآن وجود دارد برای گفت که در طول چهارده سال یک قرآن وجود داره اگر شما در افغانستان برین اگر در ایران برین اگر در پاکستان برین اگر در هم برین اگر در سعودی برین اگر در کوررانگروبایی برین این یک قرآن است که قرآن اززی مشا است که سوس داره یک حرفشان تغییر نیست این یک قرآن است م این پسی بسیار ما رو به تشبخت که چطور تودار می که این قرآن گام خداوند است فعلا در سیمی ملیون ها دختر و رو برچه این حفظ است و ملیون ها انسان شما میتونین بفین که, که اینا قرآن ازیمشان رو حفظ دارن برقص انجیل شما رو چند نفر حفظ دارن از این خاطر قرآن ازیمشان این کسایی که حفظ دارن بی بعد از ما کسایی من باز اینو یاد می تام و بالاخره قران ازمون پیغمبرستان تا علمی تا امیاله به یک در روی کاغذ و کتاب هست لکن در قلب مسلمان ها حفظ است و این خداوند حفظ کرده میگه بالاخره آهسته است این دلایل که بر ما میگفت و ما دلایل خدا میگفتیم بالاخره ما دیدیم که دلایل ما دلایلی است که صحیح عقل اولی قبول نمیکنه منطق رو قبول نمیکنه بالاخره میگه تو با سه ما علی عبدالرحمن گفتیم که امکان نداره که با مسجد مسلمان رفتیم در تکساس یالات متحده امریکا اونجا یک مسجد بود به مسجد مسلمان ها رفتیم دیدیم که مسلمان ها سجده میکنند و ما وقتی که میبینیم که عبدالرحمن سجده میکنه فکر میکنیم که این است که تنها دوبار کم بود داره. ات یک شخصیت عالی داره مسلمان است ات یک شخصیت داره خوب میگه این خصوصیت شد این روز دیگه دیدم که امین عبدالرحمن از پیشش امین کشیش تقاضا کرد برش گفت که نش... نمیشه که روز باز بریم مسلمان ها رو در ببینیم میگه من گفتم درست از بفهمونیم بریم گفت اینا رفتن شو شد ناواخ شد بسیار تاریکی شد اینا نمدن من تعجب کردم که چی کپ شد خوب ناخاسته اینا کلم حادثه ای نشده باشه میگه وقتی که دیدیم اینا دروازه زنگ زده شد وقتی دروازه رو رو باز کردم. دیدم که عبدالرحمن آمدن امرای عبدالرحمن یک کسی دیگه است که یک کرای سفید به سر دارن و اکچه پنه صفید هم پوشیدن پرساموش کردم که ایک کس کنجستاد است متوجه شدم که عمون کشیش است پرساموش کردم چی که پس گفت من رفتم اقرار کردم که اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدن ان عبدالو و رسوله. مسلمان شدم نگه من بسیار تعجب کردم یک قسم خسته شدم ایوانی من خسته شدم به این که دیدم که ایچی تو از نگده پیشتر مسلمان شد با اتاق بالا رفتم منزل بالا رفتم در اونجا فکر میکردم به خانمم گفتم که خبر داری گفت چی گفت که کشیش مسلمان شد میگه خانم روی به طرف نکرد و گفت ما هم علاقه دارم که مسلمان شد ایران منو که میگم فکر میکردم پس از منزل بالا نصب شب پایین شدم احمد عبدالعامان از خواهی دار کردم برش گفتم به خکمت دیوانه میشم سوالا رو جواب بگم امرای عبدالعامان تا صور پرشتیم درباره خداوند درباره توحید خداوند درباره دین اسلام درباره کلی گفا گفتا به صبح ما صوبت میکردیم سبا ساتی یازده بجه ما نتونستم که خود دیگه ایمان مباد کنم در مقابل ایمی کشیج که مسلمان شده بود و در مقابل عبدالرحمن ما هم کلمه گفتم اشهدوان لا اله الله و اشهدوان محمد عبده و رسوله اینا میخوزن که عبدالرحمن الرحمن مسیحی بسازن لیکن حقیقت اسلام اینا را الاخره مسلمان ساخت اینو میگم که ما آیات قرآن نوچیزه قرآنی حقیقت های قرآنی هم از این به باد داشت که مواد مسلمان شایم دو بدین دین مقدس اسلام گراهش قد اعلان بکنم و نهیه که وقتی که پدرم دیدم برای پدرم گفتون من مسلمان شدیم میگه پدرم گفت که بچه ما هم میخوایم مسلمان شدیم بالاخره که ما تمامی اعضای فامیل کلگی یک جایی مسلمان شدیم اگرچه دین‌های ما فرق میکرد لیکن کل ما مسلمان شدیم و دین ما اسلام شما که دین اسلام دینی است که به فطرت انسان مساوی است از فطرت خداوندی انسان با ایمان و عقیده مسلمان ساخته و پس آن پدر و میگه که بعد که مسلمان میشه نام خدا شیخ یوسف میمانه و شروع میکنه به دعوت و اسلام و تقریبا با... میگه که که چل شخص با سیازی مسلمان شد یک کنفرانس میگه در مکسیکو بود وقتی که در مکسیکو صحبت میکه درباره اسلام چل نفر میگه مسلمان شدن فضایی سالون هم میگه یک صدای عجیب غریب میگه وقتی گرفت که تمام امی چن نفر با یک صدا صدا کرن که اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و و بعضی کتاب های رو نشتر کردن سایت اسلامتو دی اسلامتودیکام بگیره ای هم چیز میکنن بعضی کارا و وزایفی که اجرا میکنن و در آخر میگه که خداوند مطال پیغمبرشت هم رفته که این امر این دین خداوند در هر جای میرسانه هر جایی که شب و روزه است خداوند مطال جل جل دین اونجا به مدثرونه و انسان های زلیل زلیل می سازند و انسانای با عزت خداوند با باعثت میسازن در یک محفل یک کسی گفت گفت که او مسلمون‌ها او مسلمان ها شما هیچ چیز نداره که بر ما روان بکنید حداقل شما قرآن از مشکان دارین این قرآن از مشکان خود بر ما روان بکنید اینا اگر یک کس خدای نخواسته از این دنیا بی ایمان میره یک کس کافر از این دنیا میره و شما امکان ما دونیم که از این امکانات خود عمل میشه که انسان از طریق چتینگ در اینترنت مردم دعوت بکنه به طرف اسلام بعضی مسلمان های بیرون گفتن که ما هر چند نفر ارتباط دارم در دا چیز بلکه معرفیه من مسلمان هستم اولین سوالم از او دیگه چیز نمیدارم که گفتن آره میشه که شما مسلمان شوید؟ او از ما پرسیدن که که خب اسلام چیست منم بر از تشریح کردم که این اسلام است این شخصیت هایی که مسلمان شدن اینها رو برشان معرفی می و به روی شکل اینها مسلمان میشه به وظیفه هر مسلمان است که, که اگر این دعوت اینیدات روحم است راهی, راهی کسانی است که از نپیروی میکنن کسانی که مسلمان هستند اگر میخوان که امهت حقیقی حضرت محمد صلی الله علیه و باشن بایر است که راه دعوت بگیرن از خانه خود شروع بکنن از فامیل خود شروع بکنن این نیست که مثلا انسان وقتی که دعوت میکنن باید بره از طریق کنفرانس ها و از مجلسا بسیار بزرگ انسان میتونه کلمه‌ای حق عادی در فامیل خود بگه برای, برای قرار کوچکی خود بگوید اعضای فامیل خود بگوید خب شما پرسید خانم که یکی از دانشمند‌ها راه یک نفر خود مسلمان ساخته بود این نفر خود چه قسم مسلمان شده بود وقتی که او شخصیت ائتلاف بنا و شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و شخصیت صحابی پیغمبر را در خانه خود مطالعه میکنه از این خاطر مسلمان میشه بسیاری کسایی که مسلمان نمیشه علتش چی است باور بکنید که من برطان شاید برطان کسارم گفته باشیم که یک وقت من و شما رفیق‌ها همراه یک خانم فیلیپینی صحبت میکردم برای زی گفتم که آیا ممکن است شما مسلمان شوید این خانم برای من اشا... داد گفت این دریور رو ببینید میخوایی که ما شو مثل اینی می‌دreven این اینی ای روزانه دو بوتل شراب می‌خوره و وقتی که گمش آمد میگه من مسلمان هستم از خاطر حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که ربنا الله تجعلنا فتنه للذین کفروا پروردگارا ما را فتنه یا وس امتحان بر کافران نساز که به خاطر اخلاق بد من به خاطر روش بد من به خاطر شراب خوری من به خاطر بد اخلاقی من این کافر وقتی که مرا ببینه از اسلام متنفر شود آن کسایی که اول در دنیای دیدیه اسلام درست نفهمیدن و یا بر اسلام نظر بد دارن است که اخیراً با امرای بعضی مسلمانایی که در یگان مجلس یگان جایی که برابر شدن و دیدن فکر میکنند که اینی عمل کرده اسلام عمل کرده اسلامی است و به شکل مسلمان نمیشه از این خاطر عمل انسان روش انسان اخلاق انسان طرز سخن گفتن انسان اینمی که محمد عبدالرحمن وقتی که صحبت نکردم یکی از خوب عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بود که هیچ وقت صراحت تجاوز نمیکرد یک بعد نمیداد که تا قلب مرجری حدار بسازه بسیار آهسته آهسته با گپای بسیار خوب با دلیل خود طوری که بالاخره کسایی که میخواست خودیش کار کنه این امونه بندخانی حسین ما... شما ببینین حداقل یک مسیحی میبره یک نفر مسلمان سه مره خود برای جای میده قزا میده مسرف میده به خاطر چی به خاطر که اهل دین بتونه مسیحی بسازه آهای یک مسلمان حق نداره که حداقل یک دوست خود برای یک خواهر خود باید خود هر خوانده خود بر یک کسی که میفهمد که این را را نمیفهمه برای زره حکان نشان بده حداقل ما شما وظیفه داریم در دعوت به اسلام چی هست که؟ یک قاعده اساسی است که در اسلام میگه که وقتی که شما مردم دعوت میکنین دعوت به اسلام میکنین یک دعوتگر باید چی باشه اسلام یک قاعده اساسی داره قاعده اساسی اسلام چی است میگه وقتی که هدفتان مقدس است هدفتان مقدس است واسیلیتون روز باید مقدس باشد یعنی اگر شما دعوت میکنیم در راه خداوند و خاطر کی خود دعوت میکنیم و خاطر الله جل جایل شما دعوت میکنید کمال شما باید با اونو اسلوب دعوت بکنه که اسلوب خداوندیست مت یعنی گسطی است که خداوند خداوند متعال جل جلاله گفت خداوند متعال چی میگه میگه ادو الی صبیله ربک ادعوا الی صبیله ربک بالحکمه والموعظه الحسنه والموعظه الحسنه وجادهم بالاتی شیء احسان. میعید طه صل الله علیه و سلام. ولی هر کسی که تو قرآن از نشانه مطالعه می‌کنی و می‌خوانی و مسلمان استی در راه خداوند مردم با حکمت، با علم، با دانش، با فهم، با اسلوبی که اوفی اسلوب در جان مقابل کناعت جهان مقابل را بدست بیاره. شما اگر مثلا در زمان سابق مردم از طریق محراب و دعوت میکرد ولی پیغمبر مثلا خط هم روان کرد برای بعضی از کشورها از طریق خط اونا رو دعوت کرد به اسلام بعضی کسای دیگه هم مثلا در بازار در مارکت میرفت و به مرز اون میگفت که مسلمان شوین دعوت کنید امروز در قرن 21 وسایل دعوت بسیار زیاد است مسلمان میتونه که از طریق اینترنت ارتباط بگیره با غیر مسلمان‌ها دعوت بکنه به اسلام یا یعنی مسلمان می‌تونه که از طریق فیلم برای هم فیلمی مثل فیلم مریم مقدس فیلمی وسوسه مردم رو به طرف دین مقدس اسلام و حقایق اسلام فرزا ناب بران میتونه که انسان از طریق کامپیوتر از طریق فلم, اه, سی دی از طریق, از طریق ویدیو از طریق از طرخ مختلف از طریق کنفرانس ها از جا برای مردم دین مقدس اسلام معرفی بکنن و باید این مسلمان بفهمه که من وقتی که مردم را دعوت می باید با حکمت باشن, با باید باشه با دانش باشه مسلمان بیاد که خداوند خوش ندارن مسلمانانی که دلیل و منطق نداره باشه خوشو رو خداوند خوش ندارن حتی شما زبان ها رو یاد بگیرین خوشا به حال او انسانه که زبان انگلیسی رو یاد میگیره ولی هدف ازش چی باشه از راعت خداوند متعال می این وسیله هست از این وسیله بر راعت خداوند مطال استفاده میکنن و میگه شما موعظه حسنه وقتی که با یک نفر صحبت میکنین وازتون و سخنانتون باید نیک باشن چه قسم نیک که باید, باید, که شما باید شخصیت جانم مقابله بر نظر داشته باشین این جانب مقابلتان باید کلیمی از شما نشنبه که او خسته شود دلش بد شود الفاظتان باید کنشون از دان یک نفری که برای خداوند دعوت میکنن مسلمان مثل گل است. از دانش باید گل باد شود سخنهای میکی باد شود و به این فکر باشه که خدا من مدارب پیغرمشت میگه که و علیگ البلا و علیگن هدا این باید در پیش چشم خود داشته باشیم که هدایت وقتی که خداوند متعال با پیغمبرش فرمایید که وظیفه تبلیغ است انما علیکم فماب ایدی نما صلی الله علیه و ای برای تو لازم است و ای کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام هستی وظیفه تو است که تو باید تبلیغ بکنی مردم برای اسلام دعوت بکنی و علینا ال خداوند میگه که هدایتی او وظیفه ماست ازی خاطر ما مسلمان ها وظیفه ما چی است؟ وظیفه ما صرف این قدر است که باید گپ حق بر جانب مقابل برساریم گپ حق بر یک کس اما ای که او نمی هی وظیفه ما نیست واولموی که در راه دعوت کار میکنن میگه بعضی کسایی هستن که دعوت رو درست نشناختن، ماو میگن چه قسم انسان باید دعوت بکنن؟ میگه بهترین راه دعوتی است که اوسان انسان کرد میگه انسان دعوتگر یا مسلمان دعوتگر، مسلمانی که به گرا خیر میخواد میگه این مساوی باید با چی؟ با یک دهقان، مثل یک دهقان است. شما میبینید که دهقان چی میکنه؟ اول زمین نرم می کنه میکنن وقتی که او زمین نرم شد باز دو گندم میپرتن باز چند وقت باز وقتی گندم انداخ او زمین زمینه کوشش میکنه که آب بده او زمین بالا میکنه سر اون زمین کار میکنه آیستا آیستا اگر یگان چیزای خرابی در اون زمین پیدا میشه او کوشش میکنه که از بند ببره کود شیمیایی برش میدن همیشه برش آب میدن باز بالاخره شش ماه شش ماه باز میکنن این منتظر که ما دعوتنا چی نتیجم ان کورانا چی از جامعه انسانی که توی خداون دعوت میکنه بسیاری کسایی هستن که در یک روز میخواد که یک نفرا با 100 درصد مسلمان بسازه 100 سدی نفر باید تمام گپذیر قبول کنن در حالی که درست نیست مسلمان باید چی بکنه مسلمان باید مثل اینینی دهقانواره عمل اول بر رو جوانب مقابل حقایق بیان بکنه بازو فکر بتا اندیشه بتا تا اون نفر از خواب غفلت بی خبر شوه بازو کمی نظر کم بتا که ببین برادر عزیز این برگ را که ما شما می‌بینیم این برگ برگ درختان سبز در نظر گوش شما هر ورقش دفتر اسم معرفت کردگار شما می‌بینید به یک طرف برگ زل بزنید درائل قرآنی به که به طرف جسمتون زل بزنید این چشموی زیبایی که شما دارین اید از کجا کردین این قلب زیبایی که شما دارین اید از کجا کردین اگر چشمهاتون به پول می‌بیت خریداری کردین می‌تونین از ذاتی که این چشمورا و شما خلق کردن، این آسمان و زمین خلق کردن، این بالله راه احیسا وقتی که صاحب ف این ها فاهمید برش میگیم که خب ایزات که خلق کرده ما و شما را کی باید باشه وقتی که مثلا یک نفر تلویزیون جور میکنه وقتی که یک نفر مثلا موتر جور میکنه وقتی که یک نفر یک موبایل جور میکنه به امراض یک کتلاک روان میکنه تا از این کتلاک استفاده شود و راهنمایی مایی شود تا که آسانتر از این استفاده کرده بتونن خب شما ای عضلان زمینیه که خداوند خلق کرده آیا کلام کتلاق روان کرده؟ کلام چیز روان کرده که سبب رحنمایی ما شده؟ وقتی که ایجاب را برای زیبگویی، اینها خود به خود آیسته، آیسته، آیسته، آیسته و باز از 6 بعد از سال، حضرت نوح علیه سلام 950 سال, سال مردم را به طرف واحدی دعوت میکرد، لکن یک تعداد محدود به قبول کردند. اینون او وظیفه خدا انجام داد. انسان مسلمان وظیفه خود انجام میکند. یکی باز جان مقابل ایرانی پزیرا، و پزیرا، پیزیرا اون کار از اونس و ایتی از اونس بعضی شرایطی که دولت مثلا داره که انسان باید مطابق ضرورتها مطابق نیاز مردم، مطابق مسلک مردم، مطابق خواحشات مردم، این باید همه علما کوشش بکنن که چیزهای زیاد رياض داشته باشه، با زبان عصر با امروزی‌ها صحبت بکنن. با زبان عصر کی می‌تونه با امروزی‌ها صحبت بکنه؟ شما می‌تونید جوانایی که شما جوان هستید، اکثرا صحابه پیغمبر صلی الله علیه و, علی و اینا جوان‌ها بودن. بسیاری از که مخالفت کردن، ابوال پیر خطرناک بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله صد پیامبر ارسال شد کاکای پیغمبر ابولحب بود اینا مخالفت با پیغمبران لکن حضرت امیرالمومنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه با شی داسوله بود آمد در بستر پیغمبر صلی الله علیه و آله خواب کرد چه قهرمانی کرد قهرمانی از بود که می‌فهمید که اگر او دشمنا ببین با می‌خوان که پیغمبر را به قتل برسان خب ايش کتابه کرونا میکرد، راست اون که تشمشیر حضرت علی نمیگفت، با قسم میرسید، لکن ای در او لحظه یک قهرمانی کرد و در جهت استراحت کرد و اینو کمر پیرامبر صاحب خود پیغمبران میگه که کمر مراکیب اس نکرد، جوانا او بسته‌کردند. وقتی که به مدینه منوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک سفیر خود روان میکرد، کی بودو سفیرش؟ او سفیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت مصعب ابن امیر یک بچه‌ی جوان بود. چون این جوان روان که در حالی که صحابای ریش سفیر بسیار زیاد بودند. این جوان بسیار فساحت داشت، بسیار دانش داشت، با حکمت دعوت میکرد مردم را. از این خاطر گفت، بلزمات اما یک جوان سیبا که صحبت زیبا داشته باشد، با سیر درست داشته باشند، دلایل بسیار خوب داشته باشد، برای از روان کرد و اینا در مدینه منوره مردم مسلمان شدند. همچنان در دین مقدس اسلام زنها وقتی که اسلام فرامیدند درک کردند، حالا بسیاری زن‌هایی که احيان ما در بعضی دشمنان دین اینا اینا را با وسوسه می‌پرتد که مثلا اسلام در حق زن اجحاف کرده، حقی از اونها رو خوردن. در حالی که اگه ما و شما ببینیم چرا اولین شهید اسلام زن است؟ به خاطر ازی که اون زن پی که یا چیزی که میتونه که زن اجلابتن دین مقدس اسلام است که خداوندی متعال جل جلاله ما شما رو توفیق نصیب که کل ما و شما در راه خداوند دعوت بکنیم دست ما خلاص است که اگه سوال داشته باشه که سوال خود ما عذرون سوال شما زمینه شرایط دعوت آمدن مراحل مشوره‌ای و گفتن ضرورت بذات ده چانس خوبی هستید مثلا حالا شما ببینید که فعلا کدام موضوعات در جهان مطرح هست مردم به چی نیازمند هستند حالا مثلا شما اگر ببینید فعلا اگر شما مثلا در در اینترنت میرین در سایت گوگل درس داشتین؟ دوجا های نو پیدا کردین؟ خودی یکی کسایی که نو مسلمان میشه بر و شما راهنمایی میکنه که ما چی مشکلی داشتیم؟ مثلا این نفر میگه که به میلیون ها دلار پیدا کردم، لکن اطمینان قلبی, قلبی نداشتم. چرا روی اطمینان قلبی نداشتم؟ به خاطر ازی که انسان وقت اطمینان قلبی پیدا باشه که آینده‌ش تسلیح و من وقتی خدا تضمین می‌کنه که تضمین نیست من پول دلار دارم میشه که یک روز در بگیره می‌خونه من کل دلارای از استاین بره و یک روز من یک اکسچین شوم اک تکر تکرم موتور استاین برم از این خاطر من به وجودی که پول داشتم زندگی داشتم مال داشتم موتور داشتم همه چیز داشتم لکن اطمینان برای من حاصل نشد چه قسم انسان مسلمان چیزی میکنه که او یک کمبودی دارم فعلا اگه ما ببینیم در چون تمام نظام از اونا به اساس مادیت است اونا به معنویت ضرورت دارن به دین ضرورت دارن که عقل اونا را قناعت بده. و خدای ضرورت دارن که او خدا رب العالمین باشه، خدای قوی باشه، که انسان سراز خدا اعتماد بکنن با کتابی زمین دارن که اون کتاب مطابق عقلیت انسان مطابق عصر صوبار بکنن اجازه علمی قرآن برای از بیان کنیم اون میگه، میگم من اجازه علمی قرآن وقتی که متوجه شدم دا دانستن اجازه علمی قرآن من مسلمان شدم و دیدیم که مثلا مشکلاتی که در فامیلای ما هست ولی این مشکل در فامیلای مسلمان ها نیست دیدیم که مثلا در خانه مسلمان خانم مسلمان بشعر خود نهایت احترام میکنه و شوهر مسلمان برای خانم خود نهایت احترام میکنه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه ای بی بی جان میفهمی که ما میفهمم که تو وقت خوش میباشی و چه وقت خفه میباشی اگر خوشحال باشی میباشی که چه قسم یا رسول خدا میگه وقتی که خوشحال باشی میگی که برب محمد قسم است خانم خدا میگه با وقتی که خفه باشی از من باز میگه که برب ابراهیم قسم است از اینیم جمعی تو ما که امروز تو از ما کمک خفه هستی یا خوشحال هستی پیغمبر سلام بیه که زن احترام نمی کنه مگر انسان ها و مرد های با عزت و با کرامت و احانت اینا رو مگر مرد های زلیل و پست و پست فترت ما اکرام النساء ایم و ما احانه هنه ایلا لئیم گفته پیغمبر سبب از این خاطر اگر اینمی حقیقت های ا با اسلوب درست برای ها و برای مردها برای جوانها دخترها و بچه ها رسانده شدن اونا اصلا می که این دین است که اینا را نجات میتن از این خاطر ما کوشش کنیم ببینیم که جارم مقابل چی کمبود داره که او کمبود در دین مقدس اسلام است وقتی که خانم بیفی با من یک سن مسلمان است که قصه از را ما شما خاندیم وقتی که مسلمان میشه چی میگه این خانم میگه من هزار کتاب خاندم. ولی در جمعی اینو که تانهایی که من از دینای مختلف میخوانم اگر اونا دست اول منو جواب میدادن 100 سوال, می سوال دیگه برام پیدا میشد. وقتی وقتی که قرآن از ایشونا مطالعه کردم تمام سوالای منم جواب گرفت و سوالایی که امروز برام پیدا نشه بود او ره هم فوراً ما جواب داد. از این خاطر اگر ما بتونیم قران از ایشونا با اسلوب درست، با اسلوب یک انسان متمدن، با اسلوب بسیار خوب بتونیم قران از ایشونا به انگلیسی برامردم تشریح بکنیم، بتونیم چنل های انگلیسی داشته باشیم، با زبان های فرانسوی و ایتالیایی محفل ها داشته باشیم, داشت باشیم. کنفرانس‌ها داشته باشیم وقتی که یک خارجی رو میبینیم بر از حقایق دینه برش معریفی بکنیم خود ما نمونه مثال باشیم، خود انسان باید قرآن متحرک باشد چرا پیغمبر و صحابی پیغمبر توانستن که مردم بسیار زیاد مسلمان بسازند، علت اساسی چی بود که خودشان قرانای متحرک بودن اخلاقشون چی تقرهانی بود روششون روش قرانی بود وقتی که از خانه یکی از خانومای پیغمبر سوال میشه که پیغمبر سلام چه قسم شخصیت بود اخلاق پیغمبر چی بود میگه اخلاقش قران از است اگر ما اخلاق قرانی خود ما داشته باشیم و به وسایل اصلی و وسایل جدید و مقدس اسلام بر مردم باشه بکنیم اطمن بسیار اونا مسلمان میشن. سوال میشه که که و که از در اسلام پیغمبر میگه که الاسلام و یا چوپ ما هم دین مقدس اسلام تمام گناه های قبلی را ها میبخشه که یک نفر ست ساره کافر باشه وقتی که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله مثل که تمام گناه های زیده میعکیز دلیت شد کلمه لا اله الا الله دلیت است برای تمام گناه های قبلی که یک انسان کرده باشن از این خاطر حتی پیغمبر خدا حق نداشت که یک نفر بر اساس گناه های قبلیش با حاکمه بکنن مثلا شما ببینید قصه وحشی در نما انسان بچی وحشت کش ولی یک روز بخشی اومد بر پیغمبر سلام گفت که ما میخواهیم مسلمان شوم پیغمبرش سلام گفت که اسلام گناه های قبلی را از بین میبره از این خاطر اسلام شما را قبول داریم بله بله استاد خداوندا اجازه بيان حداش شما تو تا ما رسید امام تو به منصوب شد بالا امام بله طبعا در ما و شما ایمان برین به با کتاب های آسمانی و کتابای آسمانی که زبور و تورات اینچی این ای کتاب که خداوند متعال نازل کرده خداوند در قسمت دین انسان در شک نمی پتن بیان میکنه که یعنی حقیقت است. مثلا برما شما ایمان را در قرآن ازیگوشان یکی را که بیان کرده که هیچ جای شک نیست ایمان به خدا به پیغمبران و ملائکه ها به کتاب ها برای ما و شما گفت که شما باید به با حضرت مسیح ایمان برید ولی انزج که قرآن ما و شما را ما با دست خود تعصب نکردیم ما به دست خود ایر تغییر ندادیم از این خاطر ما در قران عظیم شون که ما به حضرت مسیح علی السلام ایمان داریم حتی ما میگیم حضرت مسیح علیه السلام چرا؟ بخاطر که قرآن دست نخوردن اونها کتاب های بود برای پیغمبران خداون میگه که او کسایی که اهل کتاب هستن ای بگیرن بر خدا تو اتو میشناسن مثل که اولاد ها پدر مادر خدا میشناسن ولی تعصب خودخایی ها شما ببینید در مدینه منواره چرا مردم زود مسلمان شدن و در کهبه مسلمان نشدن دلتش چی بود؟ هلتی بود که خود علماء یهود می گفتم که یک کس در این منطقه پیغمبر آخر زمان در این منطقه نیه در منطقه هجاز کل مردم در مدینه منوان آماده بودن که پیغمبر آخری ده وقتی که پیغمبر آخری آمد یهودها دیدن که یهودی نیست از قوم از نیست از عرب است شدن یعنی دیگرها دیدن که اینا چون دیدن پیغمبر خداست آمادهگی قبل گاشتن اینا مسلمان شدن حستی یا وانمود تعسیفانه کنند دست نزنند آیا اینجیل نیست چندینجیل است شما میبینید که در اوجش هر روز تغییرات میارن هر کس دست نزنند هر کس چین میکنه اما شما میبینید اگر کلام خداوند باشه هور دست نزن مسیح خداوند زیم است ما شما ایمان داریم آمنه الرسول ماؤن زهالیه من ربه و كل کل آمنه بالله و ملاکته و کتبی و رسولی ما تمام تیرانبارها ایمان داریم موسی علیه السلام و با او ایمان داریم بعیسی علیه السلام ایمان داریم, داریم. و علی سلام ایمان داره چون خداوند متعال اساسات ایمانه در کتاب خود بیان کرده پس از بیان بوده ولی متاسفانه یعنی که من منسوخ شده و یعنی که در اون ما و شما عقیده دارین که تحریف کردن تغییر دادن یعنی این تغییر اساس مشکل است که یک کسی به نام پولس اومد که واسه ما و شما میخوانین که کتاب انجیل را تغییر داد و پولس یک یهودی یه متاسف بود و اومد که از داخل این کتاب خراب کنه عقیده توحیدی که مسلمان ها داشتن عقیده توحیدی که حضرت عیسی علیه السلام داشت عقیده که حواریون یا شاکده های از رفیس علیه السلام داشت این را تغییر داد و عقیده سی خدایی را از هند انتقال داد در مسیحیت و نام تسلیل سیاسی خدایی این را اونا چیز کردن وقتی ما شما برزگر روز خوشبرتان میخوایم